دوستان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. ما الان به بررسی کتاب جدید کتاب زکریا رسیدیم. اگرچه زکریا در طی دورهی بسیار مشکل برای قوم اسرائیل نبوت کرد، پیغام او برای من و شما وقتی که با زمانهای مشکلات و گذر از سختی مواجه میشیم، بسیار مناسب هست. به دقت گوش کنید و از خدا بخواید که زمن درس امروز با قلب شما صحبت کنه شنوندگان عزیز ازتون دعوت می کنم که در ادامه بررسی زکریای نبی با ما همراه باشید گفتیم که زکریا نبی نادیده هاست و پیام او اینه که نادیدنی ها رو ببینید سبک ادبی زکریا بسیار زیباست نه یک بار بلکه هشت بار در شش ششباب اول کتابش او اول این کار رو برای ما میکنه کنه او بر روی مشکلات دیدنی تمرکز می کنه که موجب دل قوم خدا میشد تا جایی که ناامید میشدند این مشکل سبب ترس های اونها میشد زکریا بر این مشکلات مریی تمرکز میکنه بعد به لحاظ تمثیلی و پرده کنار میزنه و به قوم خدا و ما مکاشفه ای از و خدا میده نه یک بار بلکه سه بار در باب 14 کتابش و این عبارت رو به کار میبره خداوند قادر مطلق یعنی خدایی که قدرت داره بر تمامی نیروها و قدرت های این جهان فرمان بده و اونها رو به خدمت بگیره و انواع چیزها رو به کار بگیره تا مشکل شما را حل کنه و ضمن اون شما رو به بلوغ برسونه بهترین عنوان برای نبوت زکریا میتونه این باشه مکاشفه ی حال چون که هشت بار زکریا مکاشفه ای از خدا به ما میده بسیاری از نبوت های مکاشفاتی پرده رو کنار میزنه و به ما نشون میده که خدا چیکار میکنه و در آینده و در زمان آخر چیکار خواهد کرد زکریا پردر رو کنار میزنه و به ما نشون میده که خدا همین الان در زندگی ما عمل میکنه. در جلسه قبلی دیدیم که دیدن نادیده ها یکی از اصول مهم کتاب مقدسه. باب ایمان در کتاب مقدس باب یازده ابرانیان هست. در این باب در آیه یک شما شرح خوبی از ایمان رو میبینید. اون اینطور میگه ایمان زامن است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمیبینیم. خب ایمان چیه یکی از چیزهایی که میتونید در مورد ایمان بگید اینه ایمان برهان چیزیه که شما هنوز نمیبینید در باب آخر انجیل یوحنا تومای ی شکاک شنید که خداوند قیام کرده و بر دیگر شاگردان ظاهر شده توما گفت تا زمانی که دستم رو بر سوراخ‌های دستش و جای زخم پهلوش نذارم باور نمی‌کنم هشت روز پس از این خداوند دوباره ظاهر شد و گفت توما نزدیک بیا انگشتت را بر سوراخ‌های دستم و بر جای زخم نیزه بر پهلویم بگذار. تو ما بر خاک افتاد و گفت ای خداوند و ای خدای من. عیسی گفت آیا چون مرا دیدی آوردی؟ خوشا به حال آنان که نادیده ای آورند این مفهوم ایمان دیدن چیزهای نادیده. ایمان گواه چیزهای نادیده است. خدا مرعی نیست. بنابراین برای باور کردن به خدا باید ایمان داشته باشید. در جای دیگری از عهد جدید گفته شده که ایمانی که من و شما داریم هدیه ای از جانب خداست خود ایمان شاهدی بر خدای نادیده هست که به من و شما ایمان داده. به واسطه ایمان هست که من و شما میتونیم خدای نادیده رو ببینیم. حالا پیغام اینه و این روش زکریاست. زکریا میخواد که قوم معیوس شده نادیدنی ها رو ببینند وقتی مردم مصیبت ها رو تجربه می کنند، وقتی با مشکلات مواجه میشند معمولا بر شرایط مصیبت یا مشکلاتشون متمرکز میشن تنها چیزی که میتونند ببینند مشکلاته تنها چیزی که میتونن ببینن شرایط وخیم فاجعهشون هست حجعی که معاصر با زکریا بود وقتی قوم یهودا بسیار معیوس بودند همزمان با او قوم خدا رو خدمت میکرد اونها فقط پنجاه هزار آواره درمانده بودند که از کورش کبیر اجازه یافته بودند که به اسرائیل برگردند و معبدشون را بازسازی کنند وقتی بابلی ها بر قوم یهودا غلبه کردند اونها یک ماشین جنگی با 600 هزار جنگنده بودند قومی بودند که بالای دو میلیون نفر جمعیت داشتند اما حالا در زمان زکریا اونها ارتشی ندارند اونها یک ملت نیستند پرچمی ندارند و هیچ جنگ افساری ندارند اونها از اقوام کینتوز اطرافشون میترسیدند اونها مورد تهدید قرار داشتند و بی‌دفاع بودند خدا اونها رو برگردون که معبد رو بسازند این معموریت اونها بود و این معموریت حجی و زکریا بود که اینطور تورمؤیذ کنند اون معبد رو بسازید هجعی فقط می گفت قوی باشید، کار کنید و معبد رو بسازید. اما زکریا گفت هجعی، اونها قوی نخواهند شد مگر اینکه رویایی از خدا داشته باشند. کلید قدرت انجام این کار رویا هست. این مردم به رویایی از خدا نیاز دارن. برای انجام هر کاری قدرت خاص اون کار نیاز هست. مثلا برای معزه نوع خاصی از قدرت نیاز هست. برای تعلیم نوع خاص دیگری از قدرت نیاز هست. برای یک مادر و خانهدار بودن قدرت دیگری نیاز هست. برای کار کردن با جوانان نوع دیگری از قدرت نیاز هست. قدرت خاص روحانی برای شبانی کردن جوانان نیاز هست. من کمی بیش از یک سال جوانان رو شبانی می کردم. من قدرت لازم برای شبانی جوانان در اون زمان رو نداشتم. خب، ساختن معبدی که خدا میخواست قوم یهودا در اسرائیل بسازند نوع خاصی از قدرت روحانی نیاز داشت. مخصوصا با مخالفتایی که از بیرون میشد. و آیه های یعسی که از درون شنیده میشد. قوم یهودا به عطیه روح القدس نیاز داشتند تا بر افسردگی و ناامیدیشون غلبه کنن و بتونند بر مردمان کینتوز اطرافشون پیروز بشن. زکریا میگفت تو فقط نمیتونی به این مردم بگی که قوی باشن. اونها باید نیرو بگیرن تا قوی بشن و اون نیرو با رویایی از خدا امکان پذیر هست اونها باید یهو و سبایوت رو ببینن و نبرد پشت صحنه رو ببینن چون خدای لشکرها منبع قدرت اونهاست. اونها باید رویایی داشته باشند که ببینند خداوند مشغول کاره. چیزی که تعیین کننده هست چیزی که میبینید و چیزی که میبینید تعیین میکنه که چیکار کنید. دیدن نادیدنی ها مهمه. عیسی وقتی میگفت چشم ها چراغ بدن هستند بر رویا تاکید میکرد. شما میتونید بدنی داشته باشید پر از نور یا بدنی داشته باشید پر از تاریکی. تفاوتش در اینه که اوزار رو چطور می‌بینید دیدگاه شما چیه افکار شما چیه چیزها رو چطور می‌بینید به این دلیل که خدا مرتبن از این انبیا می‌پرسه چی می‌بینی علیشه؟ چی می‌بینی حزقیال چی می‌بینی یا؟ انبیا به ما میگفتن که چی می‌بینن چون اونها خدا رو میدیدن؟ این مردم معیوس و دلسرد که در میون ویرانه‌های زندگیشون میگشتن و سعی می‌کردند چیزی از اونها به دست بیارن و از خرابههای اورشلیم چیزی پیدا و معبد رو بنا لازم بود که خدا رو ببینن. اونها نیاز داشتن چیز خوبی ببینن. لازم بود که منبع قدرتشون رو ببینن و به این دلیل خدا زکریا رو برانگیخت. وقتی شما پیغام و روش زکریا رو مطالعه می کنید، میتونید بگید که چیزی که او به این قوم می گفت این بود. هر چیزی که ببینید به دست میارید. این در بود روحانی زندگی هم صدق میکنه اینکه چطور می بینید و چی می بینید تعییم میکنه که چی به دست میارید. اگر خدا رو نبینید که وجود داره، اگر قدرت محافظت کننده خدا رو نبینید که واقعا به شما کمک میکنه مشکلاتتون رو حل کنید، به تنهایی ناامید و درمانده خواهید شد. وقتی خدا شما رو دعوت میکنه کار او رو انجام بدید، اگر درک نکنید که خدا باید منبع اون کار و قدرت حامی اون کار باشه، هدف از انجام اون کار جلال خدا باشه، هرگز کار خدا رو انجام نخواهید داد. شما با قدرت جسم نمیتونید کار خدا را انجام بدید. در کتاب مقدس کلمه جسم به معنی طبیعت انسانی جدا از خدا آمده. اگر چیزی که میبینیم به دست میاریم و اگر فرا شدیم که کار خدا را انجام بدیم، باید خدا را ببینیم. خدایی که شما میبینید چقدر بزرگه. ما باید با نتیجهگیری جی بی فلیپس که کتاب خدای شما خیلی کوچک است موافق باشیم. خیلی از ماها خدایی داریم که خیلی کوچیکه. ما خدا را میبینیم اما خدایی که میبینیم اونقدر بزرگ نیست که مشکلات ما رو حل کنه و یا اونقدر بزرگ نیست که کاری که به ما مأموریت داده انجامش بدیم خودش به انجام برسونه در ششباب اول نبوتهای زکریا او هشت بار پردر رو کنار میزنه و خداوند خدای قادر مطلق رو به مردم نشون میده که اونقدر بزرگ و قوی بود که بر مشکلات و موانع اونها قلبه کنه و کار خودش رو توسط اونها به انجام برسونه به برخی از مثالها در رویاهایی که زکریا توجه قوم خدا رو به اونها جلب میکنه تمرکز کنیم. به زکریا باب یک آیات 7 تا 17 مراجعه کنید. این رویایی که برخی از محققین به اون رویای مکانهای سایه میگن. در این متن اینطور طور می خونیم. در روز 24 ماه 11 که ماه شبات باشد از سال دوم داریوش کلام خداوند بر زکریا ابن برکیا ابن عدوی نبی نازل شده گفت: در وقت شب دیدم که اینک مردی بر اسب سرخ سوار بود و در میان درختان آس که در وادی بود ایستاده و در عقب او اسبان سرخ و زرد و سفید بود و گفتم ای آقایم اینها چیستند؟ » و ای که با من تکلم می نمود مرا گفت من تو را نشان می دهم که اینها چیستند. » پس آن مرد که در میان درختان آس ایستاده بود جواب داد و گفت اینها کسانی می باشند که خداوندیشان را برای تردد نمودن در جهان فرستاده است و ایشان به فرشته خداوند که در میان درختان ایستاده بود جواب داده گفتند ما در جهان تردد نموده ایم و اینک تمامی جهان مستریح و آرام است. و فرشته خداوند جواب داده گفت ای یهو و سبایود تا به کی بر اورشلیم و شهرهای یهودا که در این هفتاد سال غضبناک می بودی رحمت نخواهی کرد. و خداوند با سخنان نیکو و کلام تسلیامیز آن فرشته ای را که با من تکلم می نمود جواب داد. اس از که با من تکلم می مرا گفت ندا کرده بگو یهوه سبایوت چنین میگوید. گوید اورشلیم و و سحیون غیرت عظیمی داشتم و بر های مطمئن سخت قذبناک شدم زیرا که اندک قذبناک می بودم ایشان بلا را زیاده کردند بنابراین خداوند چنین میگوید گوید به اورشلیم با رحمت ها رجوع خواهم نمود و خانه من در آن بنا خواهد شد قول یهوه سبایوت این است و ریسمان کاری بر اورشلیم کشیده خواهد شد، بار دیگر, ندا... بار دیگر ندا کرده بگو که یهو و چنین میگوید. شهرهای من بار دیگر به سعادتمندی لبریز خواهد شد و خداوند صهیون را باز تسلی خواهد داد و اورشلیم را بار دیگر خواهد برگزید حالا این اولین مثال از رویاییه که زکریا بر مشکلات مرعی قوم یهودا تمرکز داره و پردر را کنار میزنه که خدای نادیده را به اونها نشون بده. خدای لشکرها که در اون شرایط کار میکنه و مشکلات اونها رو حل میکنه. تفسیر رویاهای زکریا آسون نیست. اونها مانند رویاهای کتاب دانیال و کتاب مکاشفه هستند. اونها مشکل هستند ولی میشه تفسیرشون کرد. تفسیر این رویای مکان سایه بنابه گفته بسیاری از محققین کتاب مقدس یک چنین چیزیه. مردی که در میان درختان آس ایستاده، عملا در سایه درختان آس ایستاده. او توی دره هست. بسیاری از محققین بر این باورند که به لحاظ تمثیلی این نمادی از قوم اسرائیل در این زمان هست. اونها در پایین ترین شرایط روحی قرار دارن. اونها در جای سایه‌ای هستند و به لحاظی میشه گفت در مرحله انتقال هستند. دوبار در عهد قدیم میبینید که خدا قومش رو از مرحله‌ی انتقال میده. در اولین کتاب کتاب مقدس بنی اسرائیل در مصر هستند. خدا نمیخواد بنی اسرائیل در مصر باشن. او می‌خواد اونها در کنعان باشن. بنابراین طبق تسنیه شش باید بنی اسرائیل را از مصر خارج کنه و اونها را از یک مرحله انتقال تجربه چهل ساله در بیابان عبور بده تا اونها را به سرزمین کنعان، سرزمین وعده برسونه. خدا به بنی اسرائیل در تسنیه شش میگه من شما رو خارج کردم که بتونم شما رو وارد کنم. وقتی انبیا برای مردمان زمان خودشون موعظه میکردند، اونها در موعظه هاشون به همون نوع مشکلات اشاره میکردند. قوم یهودا در بابل هستند و خدا نمیخواد قومش در بابل بمونن. بنابراین خدا در قلب امپراتور فارس میذاره که فرمانی صادر کنه تا قوم یهودا بتونن به سرزمین مقدس اسرائیل بازگردن پنجا هزار یهودی ایمان دارن و جسارت دارن که برگردن و معبد و شهرشون رو بازسازی کنن وقتی برمیگردن اونها های خراب شده خودشون رو هم میسازن. برای خارج کردن قوم یهودا از بابل خدا باید اونها را از یک مرحله انتقال عبور میداد و بعد اونها رو در اورشلیمی که ساخته می‌شد قرار میداد. در بعضی از ها زکریا بر خرابه های اورشلیم تمرکز میکنه اما بعد پرده رو کنار میزنه و آینده اورشلیم رو به قوم یهودا نشون میده شما این رو در بسیاری از های زکریا میبینید اگرچه رؤیای اول زکریا رؤیای مکان سایه بر قوم یهودا در هنگام عبور از مرحله انتقال متمرکز شده قوم یهودا موقتاً به لحاظ روحی افت کرده بودند اونها در مرحله بین تجربه اسارت و احیای اورشلیم قرار دارند مثل هر مرحله انتقالی این زمان بسیار سختی برای اونها هست آیا شما تا حالا از یک مرحله انتقالی عبور کردید من مدت هاست که با خداوند گام برمی‌دارم از زمانی که 19 سالم بود او زندگی من رو تغییر داد و منو نجات داد در طی تمامی سالهای سفر ایمانیم خدا بارها در زندگی من مداخله کرده و با انواع شرایط نقطه عطفی در زندگی من به جا گذاشته حالا می‌خوام برخی از این مراحل انتقالی رو با شما در میون بذارم که خداوند بیشتر توسط زکریا در سفر ایمانی من به من یاد داد و شکی ندارم که به شما هم کمک خواهد کرد اما از این مطمئن باشید که هر چیزی در کنترل کامل خداوند خدای قادر مطلق هست و میتونه همه ی نیازهای شما رو برآورده کنه و به شما امید بده اما باید از دیدگاه خدا به امور نگاه کنید اگر با خدا راه برید بهتون تضمین میدم که زندگیتون مهیج خواهد بود چون خدا مرتبا میخواد کار جدیدی در زندگی منو شما بکنه. در کتاب مقدس مکررا میشنویم که خدا میگه اینک من کار جدیدی خواهم کرد. وقتی خدا میخواد کار جدیدی در زندگی های ما بکنه، ما گاهی مقاومت میکنیم. مثلا فرض کنیم که در جای خاصی هستیم و خدا به ما اطلاع میده که میخواد ما رو از این مکان بیرون بیاره و به محل جدیدی ببره. در چنین مواقعی اولین مانع اینه که اون نمیتونه ما را از محل قدیمی بیرون بیاره چون ما در اونجا احساس امنیت می و میخواهیم که اونجا باشیم. بنابراین می میکنیم و به خداوند میگیم ما بیرون نمیاییم. همونطور که در کتاب یونس خوندیم خدا ما رو مخلوقاتی با حق انتخاب خلق کرده. بنابراین خدا ما رو به هیچ کاری مجبور نمیکنه. اما آنچنان فشاری برای ما میاره که ترین تصمیم برای ما این میشه که کاری رو که خدا میخواد انجام میدیم. خدا بر ما فشار میاره تا ما رو وادار کنه از جای قدیمیمون بیرون بیاییم. وقتی ما در جای سایه قرار میگیریم این اولین کاریه که خدا میکنه به این دلیلی که گاهی دعوت به رفتن به جای جدید مستلزم بیرون آمدن از شرایط قدیم و وارد شدن به شرایط جدید هست وقتی خدا میخواد ما را از محل قدیمی بیرون بیاره تا بتونه ما را به محل جدید هدایت کنه با دومین مانع روبرو میشه وقتی خدا موفق شد که ما را از محل قدیمی بیرون بیاره ما رو به رفتن وامی داره تا بتونه ما را از مرحله تجربیات انتقالی عبور بده این دومین مشکلیه که سر راه خدا قرار میدیم. وقتی خدا میخواد کار جدیدی در زندگی های ما بکنه، این دومین مشکلیه که سر راه خدا قرار میدیم. قوم یهودا که زکریا براشون موعظه میکنه، در مرحله انتقال هستند. بنابراین، هدف موعظه زکریا در رویای اول تشویق کردن این مردم در مرحله انتقال هست. سومین مشکلی که ما در مرحله انتقال برای خدا پیش میاری، اینه که وقتی خدا ما رو به مکان جدید میاره، او باید ما رو اصلاح کنه تا بتونه در مکان جدید قرار بده وقتی خدا میخواد کار جدیدی در زندگی های ما بکنه مرتبا سعی میکنه این سه کار رو برای ما انجام بده این اساس رویای زکریا هست قوم یهودا در بین قدیم و جدید قرار دارن خدا اونها را از بابل بیرون آورده اونها وارد سرزمین وعده شدن اونها در مرحله انتقال هستند و به این دلیل اولین رویای زکریا محل سایه نام گرفته این رویا با مردی که در دره تنگ قرار گرفته، به تصویر کشیده شده. قوم یهودا می‌دونن که اورشلیم تلی از خاک روبه است. اونها می‌دونن که از مرحله انتقالی عبور می‌کنن. چیزی که هنوز نمی بینن همون چیزی که زکریا پردر رو کنار میزنه و به اونها نشون میده. وقتی زکریا پردر رو کنار میزنه خدای لشکرها رو به عنوان نگهبانی بزرگ که مشغول مراقبت از اونهاست به قوم یهودا نشون میده. خدا بر مرحله انتقال اونها نظارت میکنه خدا کسیه که اونها رو از مکان قدیم بیرون آورده و کسیه که اونها رو در مکان جدید مستقر خواهد کرد خدا تمامی پروژه رو از قبل میدونه اونها باید بدونن که در پشت صحنه خدای لشکرها تمامی این نقشه رو از لحظه‌ای که اونها از بابل بیرون اومدن طراحی میکنه و تا زمانی که اورشلیم احیا بشه ادامه خواهد داد خدا میخواست اونها رو از مکان قدیم بیرون بیاره. میخواست اونها را از مرحله انتقالی و بور بده و بعد اونها رو در اوشالیم بازسازی شده مستقر کنه. این تمام چیزیه که زکریا وقتی پردر رو کنار میزنه به قوم یهودا نشون میده. دومین رویای زکریا در باب یک آیات هجده تا بیست و هست. این رویا به رویای چهار شاخ معروفه. در کتاب مقدس شاخان ماد قدرت هستند. در رویای دوم زکریا بر چهار قدرتی تمرکز داره که یا در حال حاضر و یا در آینده تهدیدی برای قوم یهودا هستند. در دومین بخش از این نبوت، زکریا به چهار قدرت جهانی اشاره میکنه که این قوم رو تهدید میکردند. ها، پارسیها، یونانیها و رومیان. زکریا ها رو روشن میکنه و بر روی این چهار قدرت جهانی میندازه که باعث آزار اونها شده بودند یا در آینده باعث زحمت اونها می شدن او دوباره پردر رو کنار میزنه و خدای لشکرها رو به اونها نشون میده زکریا قدرتی رو که خداوند خدای لشکرها به کار میگیره تا بر اون قدرتها ها غلبه کنه به قوم یهودا نشون میده قدرت های جهانی به ارث میرسند و سقوط میکنند این چیزی که خدا توسط رویای دوم زکریا به قوم یهودا نشون میده وقتی امپراتوری جهان در اوج خودش بود اون قوم به نظر میرسید که شکست ناپذیرند تصور این بسیار سخت بود که امپراتوری هایی مثل آشور، بابل، پارس، یونان و روم بتونن نابود بشن اما زکریا پردر رو کنار میزنه و قدرتی بزرگتر از قدرت این امپراتوری ها رو به قوم یهودا نشون میده زکریا به قوم معیوس و درمانده خدا نشون میده که خدای لشکرها میتونه انواع قدرتها رو برای غلبه بر اون قدرتها به کار بگیره کما اینکه در مورد بابل این کار رو کرد خدا مسئولیت و حکومت رو به هر کسی که بخواد این خداست که تصمیم میگیره کدام ملت به قدرت برسه و کدام ملت به قدرت نرسه. رویای زکریا دلگرمی بزرگی برای قوم یهودا بود. خدا بعد رویایی به زکریا از ویرانه های اورشلیم نشون میده. بعد زکریا پردر رو کنار میزنه و اورشلیم بازسازی شده رو به قوم یهودا نشون میده. زکریا به قوم خدا نشون میده که روزی اورشلیم نیازی به حسار نخواهد داشت چون که خدای لشکرها خودش مدافع اون خواهد بود. و قوم خدا نیازی به کشیدن حسار دور شهر نخواهند داشت. از این گذشته، زکریا به قوم یهودان نشون میده که اورشلیم اونقدر بزرگ خواهد بود که قابل گیری نخواهد بود. زکریا سیمای اورشلیم در زمانهای آخر را به قوم یهودان نشون میده. چهار رومین رویای زکریا در باب سه مربوط به شریر هست. بزرگترین دشمن قوم خدا، او رویای از شریر رو به آنها نشون میده. نمیدونم شما به شریر اعتقاد دارید یا نه اگر اعتقاد ندارید او احتمالا شما را همون جایی که هستید نگاه خواهد داشت اگر شریر رو با گوشای نوکتیز و با چنگالی در دست با دو و پنجه ها و شنلی قرمز تصور کنید او میخواد شما در همین تصور باقی بمونید به عبارت دیگه میخواد فکر کنید که شریر یک شوخیه حقیقت اینه که شیطان پدر دروغ گویانه. او میتونه به شکل فرشته نور ظاهر بشه وقتی پولس رسول شیطان رو به عنوان فرشته نور توصیف میکنه، او به ما میگه که شیطان میتونه در زندگی شما به شکل چیزی و یا شخصی کاملا زیبا نفوذ کنه. شری تجسم شیطان هست. وقتی ما از مسیح پیروی میکنیم، باید درک کنیم که در واقع شیطان قدرت بزرگی داره. او قدرت بزرگیه، او تجسم شیطانه. ما هم مثل عیسی باید شیطان رو به عنوان منبع تمامی شرارتها بدونیم. وقتی عیسی با شیطان مواجه شد، او مستقیما او را خطاب کرد. عیسی با شخص زده صحبت نکرد. او با دیوی صحبت کرد که اون شخص رو تسخیر کرده بود. عیسی مستقیم به منبع شرارت مراجعه کرد. او میدونست که شرارت منبعی داره. وقتی عیسی در بیابان وسوسه شد، او شیطان را با کلام خدا مخاطب قرار داد. در این رؤیای 4 مکاشفه زکریا از شیطان بسیار واقع گرایانه است. زکریا دشمن را به قوم یهودا نشون می‌ده. اول او یهوشه کاهن عظم رو مخاطب قرار میده که به لباس پلید ملبس بود و این نمادی از این واقعیت بود که در حال حاضر قوم خدا گناهکار هستند اونها به خاطر گناهشون به بابل رفتن اونها هنوز بیداری روحانی رو تجربه نکرده بودند اونها بازگشت جغرافیایی از بابل رو تجربه کردند اما هنوز بازگشت روحانی به سوی خدایشون رو تجربه نکرده بودند در رویای چهارم زکریا به مشکل گناهان اعتراف نشده ای اونها تمرکز میکنه اونها قرار بود که معبد خدا رو بازسازی کنن اما چطور اونها میتونن به عنوان کاهنینی مقدس در کار بازسازی معبد شرکت کنن؟ زکریا بر این واقعیت تمرکز میکنه که اونها باید قبل از اینکه در کار خدا و بازسازی معبد مشارکت کنن باید کاری در مورد گناهانشون انجام بدن بنابراین زکریا یه رو با لباس پلید نشون میده و دشمن که یهوشه رو به خاطر گناه متهم میکنه شیطان بزرگترین مدعی قوم خداست در کتاب مکاشفه باب دوازده شیطان به عنوان مدعی برادران به تصویر کشیده شده که شبان روز اونها رو متهم میکنه در مکاشفه عیسی مسیح که در آخرین کتاب از کتاب مقدس شرط داده شده شیطان به زیر افت خواهد شد وقتی که مدعی برادران سقوط کنه کلام خدا میگه زمان نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار مسیح او فرا میرسه در باب هشتم رومیان میخونیم که این خداست که پارسا میشمارد کیست که محکوم کند خدا قوم خود رو پارسا شمرد یعنی اونها رو عادل به حساب آورده چون عیسی مسیح به خاطر گناهان ما بر صلیب مرد و حالا خدا ما رو پارسا به حساب آورده چون ما به عیسی مسیح برای آمرزش گناهانمون اعتماد کردیم و ایمان آوردیم کلام خدا میگه خدا پارسا شمرد که محکوم کنه؟ شیطان مدعی برادران هست و گاهی از ایمانداران برای متهم کردن برادران استفاده می کنه. هر وقت احساس کردید که انگشت اتهام به سوی برادری گرفتید آگاه باشید که آلت دست شیطان شده اید در باب 16 انجیل متی عیسی از شاگردان پرسید شما مرا که می میدانید. پتروس پاسخ داد تو مسیح هستی پسر خدای زنده و عیسی به او نگاه کرد و گفت جسم و خون این را بر تو آشکار نکرده من بر حقیقتی که مردی مثل تو عنوان میکنه کلیسایم رو بنا خواهم کرد. پتروس این روحی که توسط تو حرف میزنه بعد عیسی به شاگردانش میگه که بر صلیب خواهد مرد و اونجا پتروس عیسی رو توبیخ میکنه و میگه تو نباید مصلوب بشی و این بار عیسی به پتروس نگاه میکنه و میگه از من دور شو شیطان و او رو حتی پتروس خطاب نمیکنه. عیسی شیطان رو خطاب میکنه و میگه حالا دیگه این پدر نیست که توسط تو حرف میزنه. این روح نیست که توسط تو حرف میزنه، بلکه شیطان به وسیله تو حرف میزنه. اگر شیطان میتونست توسط پطرس حرف بزنه، آیا فکر نمیکنید که توسط شما و توسط من هم میتونه حرف بزنه؟ یکی از زمانهایی که او توسط شما حرف میزنه زمانیه که برادری رو متهم میکنید چون شیطان همیشه دوست داره که برادران رو متهم کنه. روزی که خدا شیطان رو به عنوان مدعی برادران سرنگون کنه، بعد از اون کتاب مکاشفه میگه. نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار مسیح او فرا میرسه معنی چهار رومین رویای زکریا وقتی یهوشه رو با لباس پلید به تصویر میکشه اینه که شیطان او رو متهم میکنه اما خدا مدعی او رو سرنگون میکنه و میگه من مسیح رو خواهم فرستاد که سنگ زاویه این معبد خواهد شد و در یک روز تمامی گناه رو از این زمین پاک خواهم کرد یادتونه که گفتیم زکریا بعد از اشعیا بزرگترین نبی هست؟ در رویای چهارم زکریا آمدن مسیح رو پیشگویی میکنه. زکریا میگه یهوشع وقتی او بیاد در یک روز مشکل گناه رو حل خواهد کرد. پس اجازه نده که دشمن تو رو متهم کنه. در مقابل پرده لباسهای پلید کاهن وجود داره که مشکل گناه و اتهام دشمن رو به تصویر میکشه. اما وقتی زکریا پرده رو کنار میزنه، او مسیح را آشکار میکنه. و خبر خوش اینه که مسیح مشکل گناه رو مد نظر قرار خواهد داد. و گناهان این زمین رو در یک روز پاک خواهد کرد. این نبوت مسیحایی بسیار زیبایی هست. رویای پنجم زکریا شمدان طلایی با هفت شم هست که مرتبا روغن اون پر میشه. این نماد بسیار زیبایی هست. حتی امروزه شمدان ها نمات پرستش در مکان های پرستشی قوم یهود هستند. این شمدان رو تصور کنید اون هفت شم داره و دائما از منبعی روغنش پر میشه. در مقابل پرده، چیزی که زکریا بر اون تمرکز میکنه اینه مردم دلسرد و ناامید بودند اونها معموریت داشتند که حافظان کلام خدا باشن اونها معموریت داشتند که نور جهان باشند اونها معموریت داشتند که قومی باشند که کلام خدا توسط اونها در سراسر دنیا منتشر بشه و حالا اینجا شهر اونها به تلی ویرانه بدل شده معبدشون ویران شده اونها آوارگانی خسته هستند و شیطان اونها رو متهم میکنه و میگه شما قرار بود ابزارهای قوم برگزیده خدا باشید. شما قرار بود قومی باشید که کلام خدا را به تمام دنیا برسونید. به خودتون نگاه کنید یه مش آواره فرسودهی به درد نخور هستی. بعض پرده پردر رو کنار میزنه و یکی از زیباترین آیات کتاب مقدس رو به قوم یهودا نشون میده. نه به قوت نه به قدرت بلکه به روح من قول یهوه سبایوت این است. شما به خاطر روح من موفق خواهید شد. اگرچه تعدادتون اندک و ضعیف هست، اینها قومی هستند که به واسطه اونها تمامی دنیا منجی ما مسیح رو دریافت کردند و ما کلام خدا رو به واسطه قوم یهود دریافت کرده ایم. حال وقتی زکریا پنجمین رویاش رو اظهار میکنه قوم یهودا میدونه که این ماموریت بزرگ به اونها واگذار شده اما قبلا رد کرده بودند و در خودشون چنان قدرتی نمیدیدند که این ماموریت رو به انجام برسونند آیا شیطان تا حالا شما رو اینطور متهم کرده شما قراره که شاهد باشید. قراره که به مردم این دنیا زندگی شاد رو نشون بدید میوه‌های روح القدس محبت شادی و آرامش رو نشون بدید و به یک بار احساس می‌کنید که افسرده اید فکر می‌کنید که نفستون بند اومده اما نمیتونید بمیرید و شیطان میگه شما قرار بود به دنیا نشون بدید که نور و نمک این جهان هستید اما نمیتونید چون خیلی ضعیف هستید این پیام بزرگ پشت پرده ی رویای پنجم زکریا هست. نه به قوت نه به قدرت بلکه به روح من قول یهوه سبایوت این است خبر خوش پشت پرده پنجمین رویای زکریا اینه شما به ارتش و سپاه نیاز ندارید شما به نیروی اتمی و سلاح نیاز ندارید روح من این کار را انجام میده یهوه سبایوت میگوید و اگرچه تعدادتون کم هست و اگرچه چه ضعیف هستید من به وسیله روح خودم این کار را انجام خواهم داد در روز پنتیکاست خدا رویای نبوتی زکریا را تحقق بخشید 400 سال بعد در روز پنتیکاست اونجا مردمانی بودند که روح خدا بر اونها قرار گرفت. آیا اونها کلام خدا را به تمامی جهان بردن؟ البته به تمامی دنیای شناخته شده اون روز بردن. اما نه با قدرت نظامی یا با قدرت سیاسی، بلکه با قدرت روح القدس. شما میتونید این رویاهای زکریا رو در زندگی خودتون به بگیرید و ببینید چطور در زندگیتون کار میکنن. در آخر باب 14 کتاب زکریا شما دقدقه زکریا رو برای قوم یهودا میبینید که میخواد اونها خدای نادیده رو ببینن. در آخرین رویای زکریا، رویای تومار پرران او توماری رو میبینه که یازده متر طول و پنجونیم متر عرض داره. برای درک هدف این رویا باید بدونیم که قوم یهودا همه از این واقعیت آگاه بودند که دنیا پر از شریده. این تومار لعنت خدا بر شرید و این واقعیت رو نشون میده که خدا بر کنترل داره. خدا شرید رو میشناسه و میتونه اون رو کنترل کنه. گاهی مردم میگن خدا چطور میتونه اجازه بده که در واقعی هولوکاست شش میلیون یهودی بمیرن؟ چطور خدا به این اجازه میده؟ خب میتونیم طور دیگه ای به اون نگاه کنیم و بگیم خدا واقعه هولوکاست رو خاتمه داد. خدا ارتشای متحد رو به کار گرفت تا سیستمی رو که یهودیان رو به مرگ متهم کرد نابود کنه. این پیام تومار پرران است. خدا شرید رو میشناسه وقتی به مرحله خاصی برسه خدا لعنت خودش رو بر شریر میاره و به کار او خاتمه میده کاربرد عملی این رویاهای زکریا اینه امروز با چی مواجه هستید مشکلات و شرایط غم شما چیه پیام زکریا اینه پرده رو کنار بزنید و خدای نادیده رو ببینید که پشت پرده کار میکنه و مشکلات شما رو حل میکنه و شما رو رشد میده زکریا در همه رویاهاش بر چیزهای که عمداً وحشتناک و ناامید کننده بودن تمرکز میکنه اما بعد پرده رو کنار میزنه و چیزهای نادیده مثل قدرت خدا و پیروزی این قدرت رو بر تمامی اوزا و شرایط مخالف نشون میده زیبایی خدمت زکریا این بود که به مردم امید آمدن مسیح رو میداد وقتی مسیح بیاد بالاخره او به عنوان کاهن و پادشاه در او شلیم جدید حکومت هزار ساله خواهد کرد هر کدام از ما باید از خدا بخواهیم که رویایی از خودش به ما نشون بده که به جای ما در مشکلات کار میکنه. ما هم مثل قوم خدا مستعد هستیم که بر مشکلات تمرکز کنیم. اما باید مثل زکریا بر خدای قادر مطلق تمرکز کنیم که هنوز هم تمامی جهان در کنترل او هست. عزیزان امروز چیزهای زیادی یاد گرفتیم. با این حال چیزهای زیاد دیگه ای هست که خدا میخواد به ما یاد بده. حرت انگیز زینه که وقتی به اون چی که آموختیم نگاه میکنیم و وقتی درس امروز رو میشنویم میبینیم که هنوز چیزهای زیادی دیگه ای هست که باید یاد بگیریم. مهم اینه که بر خداوندمون تمرکز کنیم نه بر مشکلاتمون. دانشجویان عزیز هرچه ما نمیدونیم شما با چه مشکلاتی مواجه هستین اما خدا میدونه و مراقبت میکنه و میخواد که همه ما بر اون تمرکز کنیم. به او اعتماد کنیم و اون رو پیروی که این درس ها به شما کمک کنه که در هر روز زندگیتون وفادارانه او را پیروی کنید. تا برنامه بعدی محبت اون شما رو دلگرم و تشویق کنه.